العالمين صل الله علیه و رسول الله، و آل الطيرين طاهر المعصين، والآخره و حالا دارين رحمنا بر رحمتی در بخشی که از همون زمان به عمر حکم و یا مدینه ممشد اموری رو که محبوط به خبر بدرستی کنیم میتونم به این دو بر بسید من فکر میکردم این رای رو که هستی مثلا چون در این کتاب ها بودم در مران ماجه بودم تازه باشه خیلی ازاداتو به مجموعه روایات و آیاتی که گفته شود که منظور در در در در در که خراله وشون و وشون جدیدی است، بلکه جدایی از مدتی اصول عهد در مدرسه آموزی نمیکنه که در آزادانه راهی که شما دستوری که شما دستوری که شما دستوری که شما که شما دستوری که شما دستوری که شما که شما دستوری که که شما که بحث کچه خبر رو در مسابقه در اسلامی بررسی کنیم بیاییم همیتون تا نصفه های وقتی برای انجام شده پس شد تاجه به آیات ما خیلی واضحه که ناظر به خبره خیلی واضحه این نور که اون به سر و احساسی تمثل با آیه خواهد آمد این از که آیه نومد ناظره به طبیعت آیه نومده طبیعت خبره یا ناظره از به خبر خاصه این خیلی نقطه یه من همیشه از به بحثا در استظهار لسان دریف این نقطه خیلی همیه داره اینو همیشه در به نوباره سم با اون این اون مسار کلام صوب کلام اون محیر کلام جبیه که بر کلامه اون ما که تشریف دهیم این همه بحث هایی که برخواهد آمده به استرلاق به مخموم شرک و مخموم وست و مخالق و موافق و برسه که در اینجا ما ولی که شما وقت باشی نظرها نهاریز میکنیم سردش یک کلم هست اون بحثی سردش یک است. اون یک کلم اینه که مساق آقای ناظر است. به طبیعت خبر به نظر آقای اینه توی این مقامیه که خبر رو در از بیان بکنه اگر طبیعت خبر باشه اون شما فاسد روزه ادرس شده طبیعت اگه به فاصل از این خوکم را در میاد کارش میشه که یا نه آیا مبارکه ناظر به خبر فاصله کلیه خبر و طبیه خبر کار آیا آگه مبارکه ناظر به یه شمع از شمعه فاصله یکی از شونه فاصله اینه که در خبر او میشه پس ناظر به خبر نیزیم و دفعه خبر نیزیم ناظر به یکی از شعون فاسق که اون خبر فاصل باشه اینجا اکم فاصل رو درمه انتظر بگن این خیلی برای شما بحث سنگین سنگیل روزید از حالانت به دو کرده برای تو روشت کردید که این مساق آقایه صوب آقایه مضمون آقایه ناظر به طبیعت خبر دیگن یا آقایه مبارکه ناظر به یکی شدهن از شعون که خبر فاصل باشه اینه حالا برد از کردیم آیات دیگری که زیده شده که اون آیات مشکلی شدیمه که جمعه تریکی سرس ندارد این رو ما چند بار در آن تقرار میکنیم و این نقطه خیلی بایده در حمومیت چونکه ما رسولدن در رسول در خورت به این مولمان جایی که خبر هرینیت سرس داره اونتفر میکنیم اصلا یک فرقی مقلبی بود ولی او فرقی از شریعت خبر میده فرسوار که میده از شریعته اما طریق صرف نیست اشتغاز خودش دیخالت بوده اگر از برسی پیغمبر اکرام آمد آیه مرکی یعنی الله و یعنی از المومنی یعنی از المومنی این ایمان پیغمبر این ممکن از خود پیغمبر و وجود شخص پیغمبر تأثیر داشت برمه، برمه، برمه، این ایمان به مومنی که مومن هرچی گفت من قبول رو برن این شاید آمون نباشه برای آم مومان باشه این بلی خصوص پیغمبر باشه بلی خصوص پیغمبر خشون هبون لل اومه و رحمه صور لل آلی آلمی این شاید اگر مثلا یکیسی شدیم این شیم صورت بردیمون پیش پیغمبر یه چیزه بگوستن برد پیغمبر نارهد بکستن پیغمبر بگوستن که شاید بلی مومان نگوستین پی برموطن بر گوش هر کسی گوش می کنند هایه که این شنر پیغمبر این باشه به خاطر احترام شما فرامتون را که پیغمبر موجود داره مطلب خب ممکن است این مطلب از کساس پیغمبر باشه. خوب دقیقی اما این که آمنه مردم، تکتک مردم همچین وقتی فیگر شده باشن این از اما آیه این مقلب این خسلس و لذا توسعه باشه ما در هر بحثی که وارد میشیم باید اون خصوصیات دقیق بحث رو در نظر بگیریم خصوصیات دقیق بحث در اینجا اون جایی که هر دقیقاً تغییر شه باشه و در همین کتاب در شافعی هم بین این مسئله چه درسی رو دانش از ذهن بود برای همین حدیث رو گفت اول ما شافعی مثلا توی احادیثی که الان حضرت ما از زمان پیغمبر بود حدیثی صحیح که هم اهل سنت هم گفتن صحیح هم ما دریم صحیح خوب خوب و خیلی و حسانی و اصلا تردید و البته همین حسابی در روایاتی که پیش سال باقت نظرش در نظر شرع و سن قابل قبولشون چون حیات پیغمبر مصائب ها زیاد بوده دیگه تقریبا میشه بالاتر اکلیان بالای ایشون ارقیده صحت شده و پیغمبر اکنم صحبتی فرمودند از حجت و گدا بعد از حجت و گدا حالا حضرت متن معروفش نظره, نظره بانون و لاز و راز و سه جون هم قرارت شده نظره این به خطه که نظره نظره لا بانون ازا با باشا دلوقت عربی بهترش صحنه وقت نغرا الله با بعلن ای عالم آمد. رحم الله هم آمده در حضورش در مسادر ما بیشتر نظرا الله نظر یعنی خوشبخت باشی نوارت ناظر خدا را نوار که به اسلام قادر خوشش می با که اصلا تراوت داره با تراوت بازدیباریه مراد از نوره خداوند چین انسانی رو دیگه انسان مثلا درجه احلای از فهم و تراوت فکری قرار میده نوره رو آقایم رو سمه مقالتی از تو تبدیل به خبر نشدیم سمع مقالتی فواه خیلی نتیگه اونی که من دیگر گوش بکنه و دقت بکنه خوب دفت بکنه خیلی عجیبه این که سر کاملا معتوله سمه مقالتی و رعا تعقل و درد شده فرم بلده ها کما سمه ها اصلا روا نداره ها کما سمه ها که از من شنیده نفرو تو فکراتی میمانه یعنی یعنی اون ذهنیت خودش رو و افکاری که در ذهنشه اونا رو تو خبر نیاره نگی دیگه مراد بیخرا در اینجا این بود اون حرفا سُنّت بلغه کما سنه ها این اشاره به همون طریق اهل سنت اما الان در اصولی طریق اهل سنت در این معنی خبر بده این حدیث ناظره به طریق سر فهم بلغه ها کم آسمه ها در خود زیادی نکنه حالا خودش کشی میپهمه جوی خودش, خودش, جو خودش. اونجور که من گفتم دقیقا همون کلامی رو که من گفتم همون رو نقل بکنه زیاد و نقیصه اشعاد هست توی اضافه نکنه فهم بله به ها کم آسمه ها اگر به میاد مثلا معنی حدیث اینه اونم تو داخل نکنه فرا به ها ملفه الامنحو به افهوم ممکن این شخص از کلام من یک مطلب به درک کنه وقتی میگه به مشهد به عالم به انسان که معلومات بالاتری داره اون معلومات دیگری بیفهمه خیلی لطیفه خیلی نمره زیبایی سر هم حامل شده الان منحو به افهوم ده کتوا فقط نه اینکه من از تدریس اینطور میفهمم چه حدیث واسه خیلی خوب قابل می‌ذاره که حدیث و آنطور که میگه این بلغوا کنا سراها اینی که از که در رابطه با چون درس نواس طرواهی چه اینکه خنگیات سر دیگه تغییر در سر زیاد نمیشه نگه مثلا اگر گفتم فلانی نظرش کنده نگیه که کن عرب فلانی تبل تب رو پیامبر نازل شد و تفسیر کلمه تب داشت. چه مشکلی خبر معنیش کجاست؟ این تفسیر کردن. اگر من گفتم فلانی تب تا شما اونقدره که فلانیت خط داره به همین مقدار اتفاقو. از خود اضافه نکن که پیغمبر فرمود فلانی تب داره. گفتم فلان نزد شده. فلان نزد شده. ممکنه سو از نزد شده رو بفهمی. همه این رو برای متحسس که نرده کنیم یک مردی که بخنده سبب به حامل فکر الار من خواست و شما اگر بنادارین حدیثی رو نرده کنیم درست همون سویی گفتند گفتم نظرم آقای مرحقی درشیب از اچایی به سنعت لسف الاری حدیث از احادیث تقریبا نسان دیگه حسوب و احتمال به هم به تو رو و سهدت و سلافت مردی اون به که آمال کلمی که چون پیغمبری که از خصادتی او تیز و جوابن کلم حسولا خیلی از خود قرآن کلمات عادی رسول الله هم فوق العاده هست اون بردادین کلمات موجز رو حتی مرمون صدو در ام جدی شفافه مال در من در این دو من هم جدی شفافوش یه الله من یه باپی تو دایره که داده رو که الله پرموده و از غیر نقل نشده که باهم که پس میشه لذت و لذت آبی این شرک از زعیم و بارم آل این یکی از جواب من از نظرم بابونه برد با با سن مقالتی کبه ها سن بله ها کبه ها سنه ها فروبه هم ملتقه الانه و افلامه و ربه ها ملتقه ای که افلامه تو نکن همین طور که نهاره شده خب این حدیثی که از دستمایه های حجیه در دنیا اسلام بودی نیم چون نظر الله امره پهنمبرم ما دیوز به این مناسباتی ادهی را روایات رو که نفر شده از که فیما بعد در دنیای حدیث و محدثیم به این روایات تمسک شده من فکر نمی کردم کسی کهر کرده باشیم شافیل کرده 300 تون نمیتونم حکم که مقدار رو ما به مناسبتی از دیوز متعرض شدیم که حدیث من کرده بقیه متحمدن بود روی تفسیر شیعه این تفصیر. نه تفسیر روایتی که در پیش ما آمده که دروغ زیاد شد در زمان رسولان برزاقی رنبرن اوازت من بودن جوز کردیم با مراجعه ای که ما با شوازه خواهیم اثبات این محلتی بیموش شده و شوازه هاکی از اینه که اگر دروبی بوده بعد از پیغنبره نه زمان رسول الله بیشتر این ها بعد و لذاب ارز کردیم چون اگر دروح باشی این زمینه تعارضه. اصولا ما تاارضی رستیم در روالات اهل نه، و در روالات ما به شکل ملموس نداریم محسوس نداریم لذا و ارز کردیم اهل سنن چند نزول این حدیث رو یک واقعی واقعه گرفتن نه که کشت رو و علا رسول الله دقیق انصافت که ما در روایت بنابراین روایت با و به همین میخواستیم که بخص خبرگارت بیاریدش به خاطر که میشون بوده ارزامان خود پیغمبرم که روح زیاد بوده و نظام پیغمبرم چین ویدی رو دادن و لیکن انصافت اثبات نشده این معنا اثبات نشده و که بردار رسول الله زیاد بوده اما مثل ابو هرگر و اما این بعد از رسول الله هست زمان رسول الله ما الان شواهد شباهد تاریخی که مثلا افراد درعت بکنن در زمان رسول الله دروغ رسی پیغمبر نصف بودن و پیغمبر متعرض بشن برغمد این دروغ فعلا در درست نداریم یکی حدیث حدیث و انبنی اسرائیل ولا حرج که خون در اشاره کردن حالا من اشاره آبرو این حدیث متون متعدد داره بعضی از متونش اینطور روشه ایگه هم عجیبه یعنی با اینکه صندقی رو بشنی نداره یکی از عجایب باز معجزات پیهم براشتن منشون دیروز نگاهتم اشاره اجمالی بکنم اینشون در بحث رو بارد اگه خدا توفیلی داد گوزها رو باردشو بکنم متونش مختلفه اونی که از بعضی از متون احتفاده میشه خیلی طریقه انصافم و خیلی جایت هم چطور در زمانه حاصلش اینه که چون بنی اسرائیل اوضاعشون خیلی وقت گذشته و راهی برای نقل سغه نداریم نقل درست نداریم یعنی بلیش اشاره داره که در این امت اسلام چون الان ما هستیم میشه شما کنترل بکنید که خبر درست باشه خیلی عجیب میشه این مطلب رو کنترل بکنه اما در بنی اسرائیل قابل کنترل نیست یعنی بنی اسرائیل و میراث های علمی اونها جوری به ما رسیده که قابل کنترل نیست فردا فرموز حد دستو ان بنی اسرائیل چیما خیلی بگیم چون قابل نیستی بگیم خودو درسته؟ خودو خیلی عجیب بگیم حدیث این چیز درستی یا این چیزی نمزه یا اعتماد آخر نه حدیث حدش رو زوار نقل میکنه خیلی عجیبه این حدیثا تو ایران برات نقل شده هر کدومشونش مختلفه ان شاءالله تعالی وقت درخواهن ایده از, از مضمونش میکنم و از به این صراحت هم که من میگم نیز ها اما مضمونش اینه یعنی چیه و این درست راست این چه جای عجیبه اینا جای معجزات بذاتی است این خبر برام چون برنامه قبل از این که این مثلا من سابقا عرض کردم در میان احل سنت ادهی از علمای احل سنت دارد کتاب احل سنت اگر خواستی هم ترسل کتابه که بای خطیب هست ادهی از کتاب احل سنت مطمئن قدیمی احل سنت که در ما به معرفت حدیثه از ادهی از علمایش نفسه من ما صلی اللہ تعالی بی حاضر امه علی اثنان. یکی از ریجری ها و حسائصی که خدا رو هم اسلام قرار بوده اسلام داره درست این چون در آنسال مسیحی اسلام میبین الانسال هم می اینجاره انجیل امجیر رو سند ندارن به رو سند ندارن. اما با این که سند در اسلام از تنزیزم مثلا از ارمه دوم که اصلی اما الان تمام روایات رو سری کردن سنده وقتی پیغمبر اگر کم خبر میدن که که برنی اصلا و درسته خیلی عجیبه واقعا دوزه موجزاته چون نسب برنی اصلا اضام پیغمبر روشن بود اما این پیغمبر خبند از سال برن سیصد سال این خیلی عجیبه چون این کار اضام پیغمبر وقتی اصناد اضام مثلا هم که سند بگیم و, و این نکته که شما راجع بنی اسرائیل نمیتونی تحقیق بکنید خودت در قصهانه نمیتونید بررسی بکنید چون زیر بناهای الوی شو نیست با سره نیامره یکی نگه ایک آبور در تو تابعه یکی نگه یک آبوری بود هل آبو داری کنید بگید چون نه این سره داره در اون سره داره هم اون سره داره خیلی عجیقی نقطه لذا اگر صحبتی از بنی اسرائیل برزو نقش شد، نقش شد، نقش شد، شون هیچ طرف روش خواهده اسمان نیست شوخی از هز کسی در میشدی کسی ملایکه داشت داره اون چیه با ملایکه هست اون شیش اون بود، و ها شیش هم درست نه شونده شونده شونده. هر دو دو این این طور گفتی شما دو سات هستهی بلی اصحابت ای مکنید این چهار در جا بدید همین مثل هرمان همین من الباب علال محرام مثل هرمان و این خیلی معجزه بزرگی از رسول الله یعنی دوبار ایک ایک این دوبار سرد نمیم بلا هر چی گفتن؟ یکی گفت آبی بود اینقدر مثلا سی سال عبادت جد بخوای نعموده یکی گفت عابضی بود سال این طور بخی گفت آبدالد و باسته باید من باید حواغام درست را میرد هیچ کدومش اون چه که از بنی اسرائیل به شما رسیده خیلی این روایت اگر این متن صاحبست باشه ولی چه صدقی دوشه خیلی عجیب. یعنی واقعا یکی از موجزات من دیوز اشاره ازمانی که از مگاه که می یکی از معجزات پیغمبر اکرمه که نسبت به بنی اسرائیل یعنی چی این پیغمبر ای رو حساب دقت نکنید که این ادیش درسته این متن درسته اون متن درسته این قصه چرا چون کل چیزی ندارم بنی اسرائیل کلا چیزی ندارم اینا چی یک نقل این یک نقل میگه اینا هیچ کدومش مالی علمی نداره و این اشاره اصلا شد پیغمبر واقعا در حد اجازه ده. که اون رشد اقلانی که پیغمبر به امت میده اون مثلا عرب جاظلی اون عربی که واقعا مثلا معنی گفت مثل آقا همده چایرس نالیمی سواح و ناداله واقعا بیدیم بیاد به اینجا برسونه که بیان در کلمات دقت بکنن سند بگن این از اون از اون در ببینن این از اون نقل کرده در طبقی رو هز تمام این کاری ها رو که آن پیامبر اکرم داره اشاره می‌کنه که در این امت این کاری ها درست میشه و درسته و نظام در این امت تکث بکنید شما هی در اسلام مسئله رو طرح کنید خوب دقت اون منظر رو باید کاملا دقت بکنید یعنی قرار اون پیغمبر این خبره که اسلام یک طبیعتی پیدا این کنه که مصادرهش قابل اعتماد علمیه قابل نقطه علمیه میشه بگه این مطلب ثابته این مطلب ثابت نیست اما بنی اسرائیل کلیگی اون چی کن به که در قرآن از بنی اسرائیل درسوله کلیگی اون چی دیگه از بنی اسرائیل نفت کلیگیش به طرح قابضه از تو اعمال میکنه نکتهی برای باید وجود نداره راهی نداره فلزا چون راهی نداریم هندسو هند بنی اسرائیل براه هرند اگر یه حقیثه نهار نقالانو نبر کردن بسه همه نقال و غیر نقال بسه همه عرضش تاریخی نبرد. و بسیار نقطه صحیح نیست از کلمه صراحت ندارم اما اشاره ای داره به بعض خبر در دنیا اسلام. از, از جمله احادیثی که خیلی مشکوره و از سامیز متعددن برش و از سامیز بار من از سرده شوچندی من حفظ علا امتی عربعین حدیثا چون مجموعات دوجهی هم که جام این حدیث رو از ما آوردن با چند رسند این شامش رو در اونجا یا تو مسائل وسائل متعرض بشین احادیث یا حدیث که این حدیث خیلی مشهور شد اصلافا سونیان برسانی متعدد دارن چیه ها دارن و امرا در طول تاریخ اسلام ارو این حدیث زیاد نکشن انواع مختلف ارو این حدیث مثل از زنها حدیث در خذاالمیون ارو این حدیث در اربعین في اربعین اربعین مثلا 40 با هر بابی که حدیث در هر حدیثی از شم ثابت انواع متربه در طول تاریخ اربعین های عجیب و غریبی میشه بخاطر همین اتناوی این حدیث دلیل میشه یک اربعین نزدیک چند هزار حدیث اربعین در اربعین ال आखری انا اربعین انا ایام آخر منظر که کل با تمام این شرزده ها انصافا نداره و البته اگر حدیث ثابت باشه یک نکته غیر از آل عنوانه در این حدیث یه که در همی حدیث پیغمبر هم بهش اشاره شد رو به حامل فرم الانفاق و و اون این که کنمتن حدیث مختلف آخرش کنم حتی در با حکومتی به قیامت خیلی ها خیلی عجیبه این زگه حدیث و این نسخه چون از کردم از همون اول مطلبی که مطلب شد ما یه چیزی به نام راقی داریم و محدث یه چیزی به نام فقیر داریم فقیر دیگه از راقیه یه چند بار اولین کتابی که تقریبا جمعون جور درشته شد البته جمعون جوره به دوان خودشان سال زماناتی جمعون نیست راجع به محدیست مال عبدالحسن رامغرموزی اصلا عبدال رامغرموزی را سنیه عبدتیشون اسمش خطاب المحدث الفاصل فاصل بله شاکر ایراجه نه فاصل المحدث الفاصل بین الراهی و الواهی محدث یعنی کسی که صحبت میکنه کسی که بیان میکنه بیان گرد کتابی که میخواد فاصله بده داره کتابی که میخواد تمیز بده میخواد جدا بکنه کسی که راوید با کسی که وایه وای یعنی فقید چون حدیثم نمیشه رو با حامل فقه الامنگور رحمه الله هم از سمه مقالتی فرواه ها سنده بلگه این بلگه ها بنده روایت کما سمه ها فرواه با حامل فقه الامنگور افرومه این کتاب درست کردن اسمش اینه این کتاب میخواد هر بگذاره بین کسی که راوی با کسی که وای المحدث و فاصل بینم راوی و المحدث چاپ شده سازی این یعنی تاکر شد سازی تقریبا چاپ شده دارم من خیلی هم نسبت به چون اولین کتاب این مرحدیث اول سنن این کتاب در زرات الحدیث خوبه فعائد خوبی داره زحمت کشیده اصافه خوبی. و در این حدیث هر این حدیث به حسابه لاغی اومد قیامته و آلمان تقیه یعنی که ما حفظ چه هزا حدیث انسان رو در برسوه تقیه قرار میده خوبیه برکنی من حتی در اومد اولین حدیثم و اینکه حفظ حدیث این حفظ حدیث اون رو در برسوه تقیه قرار میده چون اصل اصل این مطلب که ما تفقد در دینداشت در اصل قرآنی است و این که ما یه چیزی به نام خبر داریم که ارزش او طریق سرطه او طریقی یه این هم قرآنی است و در روایات هم آمده از آیا ما یک تایفی از روایات داریم که اینطور دلالت میکنه من حفظه بکنه این صاحب تو سرده روشنی ندارم از جهده احادیسی که باز نره شده من روانی به اصط هر چي كه بشنوه بله, بله و درخت نکنه در واهندي فوا احد الكذابين او من را موان من, من من من كذب بله. اگر نه مثلا یه قولاني كذاب هارون باز دي نعم نكنه اگر اينم نعم بگم کذاب در بحث ردتون بحث سنت ني حديث هر سوالان صحيح هم چون ثابت شده فکر <تحق> ميکنم به اون زمان بكره این کلمه روا و این تعابیر به زمان پیغمبر خوردنش بکیم یعنی ما احتمال دیگیم یکی در این تا روایات که همان هست کردن که شافعی سی ست جمع کرده احتمال دیگر دوم و سرگون اینا رواش بدایی کرده خیلی اصلا داشته باشه مثل همین باید مثلا به صلاح این رواید که که گفتیم که یعنی کس و کس و علا حدیث رسول الله ثابت نیست و او چند از جمله روایاتی که اهل سونت در این جب در روی کردن که از زده حدیثه معروف است به حدیث عریقه عریقه با همزه و را و یا و تاق و ها که جمعش عراقه که در قرآن هم هست اول عراقه اون چیزی که انسان زیرش میشینه مثل این چیزه که هم گفتیم یعنی بسته هم گفت که به استداف زیرا میشه در مثلا آموزش جای آماده میشه در نشستن این است لذا حرکت میگه دویم در کشور سرعتی میگه حرکت داشته، به اصطلاح هرگونه حرکت سرعتی. این ویژه مزونش اینه که بعد از این پیغمبر که افرادی هستن که زیر حرکت، یعنی بار دیگر استان تو باقی بوسپانیزی در حفیصایی. یه حدیث من گونه می میرسه میگن نه اینها عقیده نبوده از کتاب اللہ. این حدیث رو نقل کردم برای کسی میگه نفی حدیث میکردم مثلا حدیث هایی که اینا میونه احادیثی البته یه دیشبونو ذکر از متن اصحابش از کتاب السنه نقل که البته واقعا این اثبات اینها خیلی مشکله یک حدیث در مقابل این دیروز خوندید که پیغمبر فرمودن اگر حدیثی به شما رسید متاوله با کتاب نبود حرو ن اون هم مشکله مثلا مجموعه احادیثش توی این احادیثی که از کرده که روشن و ثابت خود مهد من کرد و علیه متحمدنه و بعدش هم شن نزولی که در روایت معاملهی کرده روشنیست بعدش هم این حدیث مذرم لاغونه و سمع مقالتی پر باها. این هم ثابته بقیه خب یه بچه روشنی برای این نداره خب من شد یک طایفه یه روایات رو سنی کردم نقد بکنن برای حجیب به اعتماد بست بلکه بعضی از خصوصیات هست. مثل که اگر شما میدینه عبال وقتی زعیفه کذابه دیگه ازش نهرون نکنیم چون شما اگر ازش شما کذابه این حدیث دارن عزشان. خیلی من اکمینان به صحور این احادیث این مضمون ندارم در مقابل این احادیثی که گفتیم باز در میان مسادر اهل سنه خصوصا م. از اخباری ها و از چون جود بعد از مکتب کوفه که مکتب رعی بود واز یک مکتب دیگه مکتب حدیث پیدا شد که به شده دنبال حدیث بود و دیگه افراک کردن در اینجه حتی مخالفی بینی ها حشیه می بسند خیلی پس و پلاه و این منشأ شده بود که حتی افراد رو با عنوان اخانه بگه این آه حدیث سوادی یعنی شعوری نداره، خصوصا آمالا مکتب ابو حنیفو و مکتب کوفی اتفاقه بیده بود مکتب رعی و مکتب اندیشه و نظر گرفتم مکتب مثل احمدالله هنبل اصلا قبل از احمدالله هست به آمال محدث و مکتب حدیث و حشویه و از این تحاریم لذا از قرم درمان به بعد یواش نواش این بحثم هست بحث که بحث مثل این بحث بحث محدثین اهل حدیث خیبی معلوماتو که بیدانه باید کارشون حدثنا فلان حدثنا فلان و اصولا که اهل تعمال نیست اهل فیرس نیستن. لذا این منشع شد که اهل حدیث سعی بکنن روایاتی رو توجیر بکنن به اهل حدیث یعنی روایاتی بود که تو اون روایات پیغمبر از یک طائفهی در امت سرم میداد اینا اهل حد هر خباها بکنن ما هستی اهل حدیث بود مراد ما لا تذاب و طائف هستون امتی منصورین <تص> اهل حد لا تدار مخالفه مخالطات من خالط همو حتی تفروم از طاقه یعنی این هم که از نخواه بسیار بسیار مهمه که پیخنبر ازم رو اشاره پرنده که یکی از حسارت این شریعت مقدسه سرین چون شرایق دین یک عرض عریضی داره طبیعت دین زود به اصطلاح تحریف و تغییر و اوهان و خرافات توش وارد بشه طبیعت دین در زندگی بشر زود پذیرش خواهر میکنه چون دین در یک عرض وسیعی در میان مردان داره. دین مثل دانشواه هست یک طاقت دانش دانشواه توش بزرگ داره کوچیک داره بچه داره پیر داره زن داره مرد داره دعاتی داره بی سواز داره با سواز داره مردانه نیما داره همه شوهر تانیه دین طبیعتش پیر زن داره پیر زن داره پیر این طبیعت خار نهایی برای پذیرش خرافات خیلی آماده است طبیعتش در لذا الان مثلا مشکل بزرگ غربیان همینه هم وقتی صحبت دین میکنن چیزه اوها می که خرافاتی که در فارسی هست در هند هست با اسلام و با مسیحیت یکی حساب می‌کنن واختن با اسلام این اشی اشاره کنه یکی از عظمت های رسول الله برای اینکه این دین هم در میان تمام مردم و طبقات بماند و هم سالم خرابات نفذیره این نقطه است خیلی عجیبه اینه فی کل اممتی فی کل خلطن طبعه هست عدول یعنی فونه هم تحقیق قاضی منتحار مبتلی اصلا پیغمبرون در این شبیه مبتلی در هر طبقه در هر قرمی افرادی خواهند آمد که اشتباهات ها دروه ها جعلی ها باقیدی ها و وابسته های بدی که اینا این که بحثا اینا که جعل کردن اینها رو بر کنار می‌کنه یکی از یعنی یکی از معجزات پیغمبر بررسان که طبیعت این دین رو پیغمبر جوی امانه کرده که خاوی نخالی خرافات و اضافات و جعل یعنی ها اصلا نمی گیره البته اهل سنت این معتبر این ادولا یعنی اونا به تحریف قابل من تحلیل بواضع غالی کسانی که اثرات میذارن مثلا کسانی اثرات میذارن یعنی چی دیگه زرد و نارنجی و, و شرم آور میذارن بابا چی این گفتن هی اضافه میکنن چهرهیی رو هی حالا انتحال. انتحال از یک حالت طبیعی خودش به حالت دیگه در می و انتهای انتهای از نعم به معنای به اصطلاح تدویر در آوردن جعل کردن درو مدعای منتهی ساختگی محتیم هم که واضح یعنی یکی که در شریعت سعیم کنند انتحال کنند جرد بکنن ورد بکنن لیکن در امت من تا روز قیامت خیلی عجیبه لا تزار رو همو خالفتون من خالفتون حتی قبول مستاره به درسیم تا روز قیامت قیامت طبیعت این دیم در شریعت من به است که همیشه در اش طابق منصورین حدر خط اینا به دنبال خرافات اوهام ساختی اضافات نیستن منصوری لعبه و لا خضر و مخالفت منخالفت مام من هم هم سا سر و مستانه خب هر حدیثش بودن مالیم از احمده اول نه خور شده اگر در اسلام طایفه منصوری لعبه باشه هم کی ممکن قیده از آهل و برای که برعی خودش این که منصوری لعبه بیاد چون مکتب حدیث با مکتب معارضش هم چیزه مثل ابوخاری جزء اشهدها بر علی حنفی ابو حنیفه به شدت تاکید میکنه محدثین رجالی از کلام دسته واسطهشون و یک نفرشون نمحوب به هیچ کدی از اون نقل کرده تاکید میکنه که اصالت اینا ضعیفو ابو حنیفه به خاطر رنگه اینا اونها گفتن اگر پیغمبر که در امت من ادهی هستن که این اینا منفیر مثلا که جانگر خواه رایی که رایی منه که منصور نهاله حفل حق حفل اون رایی خودش دیگه اگر بنا کسانی منصوری نهاله حفل باشن ما هستیم هاله پس یه رایی مجرح این یک از روایی ها که این مزمونه این آملا مقتن کل در اومتی و دوره یا یعنی خونه المتحقی فرقادی و انتخال مقتن مقتلی این مولا بعضی از روایاتی رو پخش کرده حتی, حتی به امیر چون دوسته به روایات منصوب به امیر حتی به امیر نسبت بدن که فرمون که پیغم رقمه اللهم مرحب خالقای سه از رسول الله قال الذین یعطون من بعدی در خطان یعرون سننی یعرون بعدی و یعرون سنن سننه من روایت یا علمون ها الناس این الله معنا کلاپایی رو و لذاب یک کتابیه که چند نوشتن مقالات کتابی هست مثلا گشتن یک کتاب خاص اینه شرف و اصحاب الحدیث مال ابن رجب عملی چاپ شده من دارم میگم چه شرف و اصحاب اما عوارض این حدیثه آورده حدیث الله و مره عنه صلی الله علیه. البته که در زمان ما اولا من مرحوم نرادی در اروقه داخلیان طبینی در ولاده فقیب ایده از خواهم ما از این حدیث ولاده تغیب رو فهمیدند. الله ماعره صلی الله رو هم کردم بر فقیب. مثلا عرض کردم این حدیث از قرن دوم زمینه حدیث قرن دومی. یکم جنوز اگیاد سوالی که در صدون تشمیون من عرض کردم که انبی از صادق و بنی هاشم و املا علی بن مومی نصاب داده می‌دادن کتاب‌های دین‌ها به امیر اون یکی شب از همین صادق عمر علی عدی بود این حدیث در مصادر اهل از این شخص آمده از همین سید ان عمر نهری علی عدی ان هم رسول الله اما در مصادر ما در صحیفه رضا آمده من دیروز اون صحیفه رضا در بحث توضیح دادیم یه مقدار احادیث که در چند مصدر آمده باستانه یا بیستانه در امیر و ممنونی منصوب هست هم همینه از سر مجموعهیه که من تا دیدن تقریباً این رو تحجم بگم که صحیفه ما نیشی دارم تب و رزا تب و رزا نه صحیفه و رزا مجموعه روایات که بوده که نقل کردن در رزا این روایات مجموعه ها سنداش مختلفه و طبق اختلاف سنداش عدد هم همزیاد داره و موظم اینها رو مرمو میشه که صدور اول منجمه در کتاب او اون اخبار رضا جمع کرده موظم اینها و این مقدار زیادی از روغات این کتاب از زیدیه هستند، از زیدیه هستن از سنیا هستند. به احتمال که من بیدم تقریبا به استثنال ایکی دو دارش شاید کل روغات این سمیه هستن از, از سنیا باشن دیروس رو بست از کردم. قدر بزرگان اصحاب ما با این سند از, سن از این آموزا نکردن مثل پس این بزنگی بگه این رضا نبی همه آقای این قسمت وقتی یک قسمت هایی از این سنب از رضا رو خوب دقت کنید یک قسمت هاییش تحبیبا مشترکه همیشی شده هم نرم یک قسمت هایی از این سنب از رضا فقط یک راوی نرم کرده یک قسمت ها راوی دیگه نرم مرموم شیخ صدوق در اون اخوان بزان یه مجموعه مشترک رو میاره آنه معروبی اندرزان اخوان متفضله لکه این سه تا سند در اولش می سه تا سند سه نوسه هست این سه نوسه میاره یکی از مشترکاتش همینه قال قادر رسوله الله مرحل خلقای البته در این کتاب بید مرمومه از همگی نگید نشه سیاست این موارد مثلا هر کس سند ذیفه مجهول اما مثلا تعیید میشه بحث تعیید نیست یه صحیفه بوده منصوب به مجموعه روایات بوده اسما نداره خوب دقت بکنید در بعضی جا اسمش اون موارد صحیفه رضا در بعضی جا در خود بحثه که احمر سنی ها سنی گفتن لاحوج جزء ان الرضا بعضی ها میگن لاحوج کراسن امر الرضا لحوه سریع یعنی سریع کدن دقیق کسی ایس نیست روایات متفرده ایست که برمی و مومنی ازده با اون روایتی که اون عمری عربی نرمو کنه اتحاب داره این کار خوبی من اینو تکرار کردم دیگیزم گفتم اینوزم مختصر وقت ما شده اگر که بشه کل منصوب اموی که منصوب برمی و قضایه و قضایه های و بلا نمیدونم رو روایات و پتابه های در گروب زیدیه و سرمیه و اسماعیه و شیعه و در طرز مستر تحقیق بشه انسان یک مرسوعه بسیار خوبی در بیان خیلی از ریشه ها رو مکنه انسان بتونه پیدا بکنه از حال این روایت به لحاظ سندی هر آن در دو مستر وجود داره یکی مستری که از طریق عمروزنانی در کتابه سنت دیدن در شیعه در یکی هم منصوب از برزاد رضا از کردیم. از این سحارف رضا از این هشتا تا تغییران تغییر هشتا تا تغییر نوشته باشه یعنی هشتا نسخه شده از این رضا به سرام هیچه سال هیچ کدومش هم کلی نیمونده هیچ کده من این طلاق را کلی نهبه گردم میشوند اگر پلسطی شد باید ما اینا را توضیحات بیشتری رو جای خودش روییم به هر حال این حدیث در ما سرد روشنی نداره وزر روشنی اما اما اصحاب حدیث خیلی به این توسط کردن از لذین یتون من بعدی یرون سنتی گفتن این اشاره از شرف اصحاب حدیث. برای من این روی که عرض کردن که چون با خواهی بگم چون می از این حبیر یا اطلاقات بوده مثل هر قلم آبار از سال انبیان گزن مثلا مراد هم یا مثل این یعطون منبردی یرگون سنتی البته این راجع به این که هلا مراد یرگون سنتی و علمون ارناسی می گفت فاقه ها مرادن می اونی که بیشتر در تفکر امامی ما وجود داره این رباریات با حدیث سقلی با معنا بشه نیتار که کنمون سقلی انتخاب الله به افرتی اون چی که منشه میشه اوهام و خرافات و تحریق ها و انتحال ها از شریعت مورد از بشه یکی وجود یک وجود افرته که هیچ جایم از باران جدا نمیشه این تفسیر کلی ما نینه بسی که اهل سرن از من داخل میاد وشون اهل اه یه روشی که هم توقهانیش کدومشون نیست به نظر ما اهل قیدنی سورجون نیست سر اینکه در این شریعت تحریف ها از بمیره اشتباه ها از بمیره و این دین با اینکه طبیعتی داره که تو خرافار توش راق بیدان میکنه در درجه از دلال افرد به صدیر اون حدیث رو که قرآنه و در درجی دوم اهل قیدنی و طبيعتش هم همینه یعنی با طبيعتش یک چیزی یک وسیله‌ای به خداوند متعال قرار بده که وقوع او مطلقا حریم باشه یا به اصطلاح ما معصوم باشه مثلا علی الله علی الرسول و, و امر منکو حتی فقها هم دارن میگن شیعه تناسخ این حدیث لكن دیگه خب اثباتش براتون مشكله منو خب چه می‌فرمه وقتی ارجاع امر به یک کسی داده شد مطلق باید معصوم باشه چون اگر معصوم نباشه و طرف بدون این آقایش اشتباه میکنه خفا میکنه باید تحیید بزنه بگه اطاعت فلانی بکن تا مادام علالفقت تا مادام خلاف واقع نگه و لذا افترم مثل تفرازی با اون اینادی که داره میکنه که ظاهر آقای اینواره که مورد زهر درم کسایی باشن که معصوم باشن بگرد معصوم برم نباشن چون تا معصوم نشد اگر شعزاد ارجاع باید مغیید بکنه دیگه از فرانی مثلا شما یک یکی با مراقب با قسع عمل به حکم حاکم إلا لیکن ملشه و حکمی خفر بیدید إلا شما حاکم معزوم نید شما تو رسول الامر نمیارید حتی الله و عزیز و نصف این که النفی الَّذِينَ يَحْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَيَا رَبُونَ السُحْقِيدَ لذا نه اهل حدیث مرادن اگر این رو باید خوابتن نه باها با مرادن یه شدود رو بارد میسید چون اونی که یک و تحریف غالی و انتحالا مقتبین این زادهش تحریف که مطلقا این هست نه این که اگر درست گفتن که شاهدون درست بوده، به درست بود نه مطلقا این مطلقا با رسمت میسازه ولی اضافه توی اراز دارن نحنال علماء نحنال علماء یعنی اگر در روات فرمان برد مثلا جای آمردن علماء امان من و رسول مثلا علماء و رسول انبیاء اون عالم واقعی ما هستیم و اون سرش هم قیلی از این جهتی که آنها ارز کردن یه نقطه یه هم داره اون که الفاظی مثل یعون سنتی یو علمون الناس علماء اینا الفاظی هستند که به اصطلاح منطقی کلی درجات دارن چون که ذکر شده خیلی باراست قاعدتاً باید اون درجه بالا یعنی علمه ها دقیق میکنیم فنز رو الامت دارم علم شیعه علم علمه مردم صابجه ها که به مقلد هم میگن برو به سر درست به این مقلد نگم علم الان مقلدی که به قصاله عملی عمل کنه آله بگه به عقیقش عمل کنه اما میگه پنزوب و دلابجون منکوم یه علم و شیعن منقضاینا از که یه قدر علم یک درجه علمه عظمت این منصب اختضار بکنه که همدشون در این درجه بالا عظمت منصب اختضار بکنه وقتی پیغمبر اکرم بفرمایه الله مرحوم خداقایی الذین یعطون من بعدی؟ یه روم سنتی هم اون سنت واقعی و هم اون رباره واقعی این اگر احمد هم بلا بکنه معلومی از رویه از کلان کلان کلان کلان اون قبر موسیقتن این واقعا پس دوست نقطه ما از گرده یکی حدیث قبله یکی از این قبر موسیقتن اینجور رباریان و امناه رسول قبر از این علماء اگر دیدی از عنوان بعد یاردون سنتی قدرموسیطقه رد که ماگم بود خلیفه رسول الله که سنت واقعی رو نرضه کنه و ابن سعد احمد سنت واقعی رو نرضه نمیکنه یعنی الله علیه و محمد این خلاصه این بود فرضا نتیجه نهایی بحث